علی سیدنا و نبينا محمد, محمد. و على آله تیبین تاهرین المعسومین لا ما بقیت الله في الارزین <تصفح> اللهم انت السلام و من السلام و لکه السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا يوحنا و رحمت الله و السلام على الائمه الهادين المهديين السلام على جميع الله و رسله و ملائکته اجمعین السلام علينا و علا عباد الله الصالحين السلام على علی امیر المؤمنین السلام على الحسن والحسین سید شباب احل الجنه اجمعین السلام على علی ابن الحسین زین العابدین السلام على محمد ابن علي، باقر علم النبي، السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الکاظم السلام على علي ابن موسی الرضا السلام على محمد ابن علی الجواد السلام على علی ابن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علي الزكي الaskari السلام على الحجت ابن الحسن القائم المحشي <تصفح> قال علي عليه السلام صبرا بن الكرام ثمل موت الا قنطره صعب بكم ان البؤس والذراء الى الجنان الواسعه و النعيم دائمه، فايكم يكره ان ينتقل من سجن إلى غسر و ما حوالى آدائكم إلا كمن ينتقل من غسر إلى سجن و عذاب. إن أبي هدسني ان رسول الله إن الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. و الموتو جسرها اولائه جنانهم جنانه هم و جسرها هم هم ما کذب تو ولا کذبت خب بیشب این بحث آغاز کردیم که از فرمایشات عبا عبدالله الحسین علیه السلام همچون اعمال و حرکات اون حضرت به اندازه توان و فهممون درسهایی را که میآموزیم یکی از اون مطالب در روز آشورا در اون صحنه حساس بعد از همه امتحانات صبح روز آشورا امام علیه السلام به خسیسین میفرمایند صبرا بن الکرام کرام را دیشب اجمالاً معرفی کردم در جستگان عالم صبر که مورد بحث است و ادامه بدیم این نکته را اولین درس به ذهن متبادر میکند که حتی در سطح افراد با کرامت اصحاب ابی عبدالله در روز آشورا قرار داشته باشند باز هم امکان تعالی و در سطح بالاتر رفتن مطرح است یعنی هیچ فردی از افراد مؤمن نباید به درجه از کمال معنوی که قرار دارد راضی شود و قانع گردد بلکه زمینه رشد و تعالی برای درجات بالا را در خود ایجاد کند که خداوند چون این توان و قدرتی را به انسانها داده است این یک درس درس دوم عواملی که باعث تعالی و ترقی می شود طبق فرمایش ابی عبدالله در این عبارت یکی از اون عوامل صبر است ضمنی که صبر در روایات از ارزش بالایی برخوردار است ولی با توجه به این فرموده حضرت این را می که برای رتبه‌های بسیار بالای معنوی و درجات ارزنده تعالی روحانی از موثرترین عوامل صبر است چرا چون برای بنل صبر را مطرح میکند نه این که برای طبقات دیگر صبر مطرح نیست اما اگر کسانی که مراحلی رو پشت سر گذاشتن تا به مصداق این حقیقت نائل شوند که مثل امام حسینی در روز آشورا بفرماید فرماید بن الکرام امام در این سطح اونها رو بشناسد با وجود این جهت رسیدن به مراحل بالاتر و ارزنده امام صبر را برای اینها مطرح سازد پس یکی از عوامل مؤثر رشد و تعالی در سطوح بالا و ارزنده صبر است مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عظیم و پرارزش اخلاقی خودش و سعاده به مناسبت همین بحث صبر باوی دارند و بخشی دارند چند مطلب رو تذکر میدم که بنده ضمن مراجعه دیدم مطلب بسیار جالبی است به درد بحث ما میخوره اجازه بدید از اون استفاده کنم بعد وارد آیات مربوطه و روایاتی که مورد نظرمون بود بشیم مرحوم ملا احمد نراغی در معراج سعاده میگه صبر، ایستادگی که دیشب معنی کردم حبس نفس در مقابل امری که ما میپسندیم و در مقابل امری امریک نمیپسندیم اینو دیشب گفتم همه گفتم که اینو اول در نظر بیاری یه اموری را نفس ما میخواهد ممکن است به صلاح ما بر اساس شرع و عقل نباشد صبر در اینجا این است که در مقابل این خواسته بیشتیم حبس کنیم بیشتیم یعنی اونها رو که میخوایم نریم دنبالش اموری را نمیخواهیم نمیپسندیم دوست نمیداریم و حال اینکه شرع و عقل پس باید نگهداری و حبس نفس را نسبت به این امر که وادار کنیم که بخواهد این گفته شد مرحوم ملا احمد نراقی میگوید با مثال زیبایی هم که وارد این بحث می شود میگه گاهی صبر نسبت به امکانات دارایی ها نعم و خیرات و امکاناتی که خدا در اختیار انسان قرار داده گاهی به عکس صبر در مشکلات و گرفتاری ها و نداری ها و فقدان است. هر دو صبر مهمه. اما در شرائطی که دارایی و توان هست، مأمور به حبس نفسیم اون مهمتره. درستم هستین؟ بس. مثال خوبی که ایشون میزنه به این معنا. میگه یک انسان گرسنه نسبت به گرسنگی بی‌تابی داره. عواملی که این بی‌تابی رو از بن می‌بره قضا در اختیارش هست یک زمان غذا دارد مشکل مالی برای تهیه غذا براش مطرح نیست همه جور امکانات سیر کردن الان در اختیارشه ولی رو معیار شرع و عقل نباید بخورد صبر در اینجا با وجودی که دارد گرسنه بماند این یک جور سبره یک زمان گرسنه است و ندارد که بخورد در اون مرحله نداری صبر میکند هر دو صبره ولی کدوم یکی از این دو تا صبرها حساستر و مهمتره در ای که ندارد صبر میکند در واقع چارهای جز این نداره یعنی با رضایت و رشد خیشتن که در مقابل این امر خود را کنترل کند این نیست اما در آن فرضی که امکانات در اختیارش هست و می به ارزای های خود بپردازد بنا به ارزش هایی که در نظر دارد خود را کنترل می کند این سر ارزنده است از این دید هر بسیار سیار عمیقیه مرحومه خب ملا احمد میدونید بزرگی است مرحوم شیخ انصاری با اون عظمت وقتی از دسپول شهر خودش خارج شد خاص به حوزه نجف بره یکی یکی شهرهای ایران رو رفت حوزههای علمیه شدید دید اساتید قوی شهر رو دید دید چیزی براش ندارن زود اون شهر رو ترک کرد به نراخ که رسید ملا مهدی نراقی پدر ملا احمد نراغی پسر این پدر و پسر از نظر علمی و حتی سیر و سلوک عملی در یک سطح بالایی بودن هشت سال شیخ انساری اونجا موند حال خودش نوشته میگه دیدم نمیشه از این دو عالم جدا شد از بس که اینها برای کی برای شیخ انصاری ازمت عظمت هشت سال مونده استفاده کرده حالا یه نمونه تو بحث اخلاق یه نمونه در رابطه با صبر ببینید چقدر تعبیر حالا ادامه شما عرض میکنم که بازیشون میفرماید پس صبر حبس نفس است در جایی که میخواد نباید بخواد نگهش داریم <تصفح> نمیخواد باید بخواد ولی دو حالت اون جایی که میخواهد و امکانات ارزای خواستش هست این خواسته جلوشو بگیره اون جایی که میخواد امکانات در اختیارش نیست. صبر کردن این دوتا قابل مقایسه نیست از این دید سه مرحله بعدی رو درست میکنه میگه یک ما صبر میکنیم نسبت به اموری که به اختیار ما هست و ما توانمون رو به کار میبریم با اختیار و اراده صبور باشیم مثل طاعت و معصیت هم در ساعت هم در معصیت اتفاقا روایتم از صبر از صبر ثلاثه صبر اندل مصیبه و صبر على الطاعه و صبر فی معصیه حالا بحثش انشالله مطرح میکنم میگه یک زمان نسبت به امری که اختیار در دست ماست مثل معصیات مثل طاعت به اختیار خودم میتونم معصیت کنم صبر در اینجا چیه جلو جلوه ها نسبت به معصیت بگیرم خودمو با اراده وارد به این کار نکنم تاعت یه مقدار ممکنه برای بعضی‌ها دشواری داشته باشه این عباداتی طاعاتی که پروردگار عالم بر من واجب کرده برای انجام اون‌ها یه قدرت ایستادگی از خودم به خرج بدم اما اختیار اراده در قدرت خود من هست به کار بردن جهت انجام عبادت، ترک معصیت این یک نوع صبره. امور دیگری هست حصول اونها به دست آمدن و تحققش در اختیار ما نیست ولی مکافاتش در اختیار ما صبر اینجا به چه معنیه؟ دقت بفرمایید خود تحقق این امر در اختیار من نیست. دیگری داره انجام میده. ولی مکافاتی که نسبت به این عمل باید تحقق بیابه در اختیار بنده است اونجا صبر معنا پیدا میکنه مثل چی؟ هایی که برای انسان دیگران پیش میارن این که در اختیار من نبود دیگری بنا به جهاتی، عذیتی، آزاری، مشکلاتی، گرفتاری هایی برای شما پیش بیاره شما نسبت به مکافات اون که, که پیش آوردن گاهی میتوانید از خدا بخواهید خدا جریمش کنه. گاهی میتوانید طبق حتی نظام حاکم بشری مثلا مراجعه کنید به حاکم شر در قبال عذیتی که به شما کرده‌اند مکافاتش کنید. اینجا شما در اون مشکلی که براتون پیش اومد اراده نداشتید، اختیار نداشتید، دیگری کرده. ولی مکافاتی که الان می‌خواهید انجام بدید، قدرت اراده دارید. صبر اینجا به چه معنی خیلی مشکله با وجودی که میتوانم در مکافات او اعمال قدرت کنم صبر میکنم یعنی خودمو نگه میدارم قرآن کریم در این زمینه حتی توضیح میدم باعث سول استفاده وقت نشه مکارم اخلاق با مکرمت اخلاقی با محاسن اخلاق که رو قبلا دادم اما شما به این آیه در سوره احقاف آیه سی و پنج دقیقه بفرمایید و یه آیه دیگر 126 و نهل این دو آیه رو دقت کنید آیه سی و پنج احباب وسبر صبر کنید کما صبره اولول ازمه منر رسول کما اونگونه که اولول ازمه از رسولان صبر کردن صبر اولول ازمه از رسولان چگونه بود؟ چه عذیتی به انبیاء و رسولان رسندن تا حدی که من در تاریخ پیغمبر می دیدم برام خیلی عجیب بود داشت قناعه جنگی رو تقسیم میکرد بیت المال مسلمین رو بین مردم تقسیم میکرد یکی از این افراد سریع آشکار بلند در میان جمع گفت این انسان پیغمبر رو به در تقسیم این غنائم نسبت به سهم من خدا را در نظر نگرفته است نعوز بلا نسبت به پیغمبر اسلام بینی برای شندرغاز مسائل مادی که توقع نابجا داره این گونه دل پیغمبر را به درد میاره حتی داره که رنگ چهره پیغمبر قرمز شد رنگ چهره تغییر کرد که اینها چه تهمت هایی به من پیغمبر میزنند؟ در رابطه با من ببین چگونه دارن عمل میکنن اما صبری که پیغمبر خدا صبر و یقولون هم حجرا جمیلا که در سوره مزمل دستور به پیغمبر میده صبر در اینجا به چه معنیه یعنی صبر کنه نسبت به اینکه این که ای حرف اون زنه قهری که زد اینکه در اختیار پیغمبر نیست او میگه اما میتواند مکافات کنه میتواند حجاری کنه میتواند نفرین نبوی شامل حال او بشه اما پیغمبر اینجا صبر میکنه در سوره 126 سوره نحل، این دستور رو به ما میده و این آقبتم فآقبو به مثل ما اوغبتم به اگر معاقبهای در رابطه با یه عذیتی مطرح بشه به مثل همون شما حق دارید معاقبه کنید یعنی عمل به مثل کنید ولئن سبرتم لها وخ خیران لسابرین اما اگر بخوید در مقابلش صبر کنید این برای کسانی که صبر بهتر است خب یعنی اون شکل دومی را که مرحوم ملا احمد در صبر مطرح میکنه شکل اول به اختیار خودتونه صبر اونجا ارزش خودشو داره میتونی عبادت کنی که مقدار استقامت خودتو بالا ببر انجام بدی این کارو بکن در عبادت ایستادگی داشته باش در معصیت تو قدرت داری که خودتو از معصیت جدا کنی خب این قدرت رو در خودت ایجاد کن صبور باش ایستادگی و توان لازم رو پیدا کن از معصیت جدا بشو اما در فرض دوم تحقق و حصول اون فعل در اختیار شما نیست الان مشکلی بलियेی گرفتاری رو دیگران برای شما درست میکنن شما صبر نسبت به مکافاتش براتون مطرح میشه اونجا هم دستور اخلاقی برای تکامل و تعالی اینه که صبور باشید البته با یک فرض که تو پرانتز توضیح بدم رد بشم چون قبلا به مناسبت هایی در بحثها ایم نمیخوام زیاد تکرار کنم این بحثو تمام دستورات دینی متکی بر این اصل است که اگر میخواهند از او سو استفاده کنند بد برداشت کنن و باعث خلاف بشه تکلیف عوض میشه یعنی ما دستور داریم در اسلام لذتی که در افس در انتقام نیست این درست این عین از احادیس گرفته شده اما آیا طبق آین مسیحیت که اگه این طرف صورت زدن این طرف هم بگیر بزنن این با یکیه نه یعنی چی یعنی حالا کسی اومده در حق شما بدی کرده یه ناروایی در حق شما روا داشته شما با بخشش و در او هم روحیه انسانی ایجاد میکنی خجالت میکشه شرمنده میشه متوجه ارزش اخلاقی میشه تکون میخوره این کارو بکن بذار عوض بشه ولی اگر دیدی با این عفد کردن سو استفاده میکنه یعنی این طرف قضیه شما و او اون کسی که به شما ظلم کرده است صبر در مقابل این ظلم به چه معنیه ای هستید بجه دیدید میگه خدام بیاد من نمیبخشم یعنی چی؟ خدا بیاد من نمیبخشم یعنی نعو بالله من خدا رام قبول ندارم دیگه این صبر میخواد که این همه ارزش داره میگه اگه میخوای رشد کنی اگه میخوای بالا بری لذا یه عبارتی دیشب گفتم اشاره میکنم برخی ارزش از یک طریق خاص حاصل میشه اینو انایت داشته باشید من صبران بن دارم ارزم کنم برای رسیدن به یک مقامات والای سیر الله صبر لازمه صبر به معانی مختلفش مثلا لازم میشه گاهی آدم قدرت فشخوردن داشته باشه بعضی ها خواه کج نگاه کردید چهارشب خوابشو نمیبره خیلی ضعیفه به چه معنی؟ یعنی گرفتار منیت هست گرفتار توجه به خیشتن است به این میزان که این کیفیت برخورده با من برای من این جمله رو حتی بعضی افراط میکنن که اونو قبول نداریم افراط میکنن برای اینکه در این مسیر به یک رشدی برسن خودشون در معرض برخی اتهامات قرار میدهند تا از بس این اتهامات رو به اونها وارد میکنند مثل ملامتیان زمینه بی تفاوتی نسبت به اونچه که دیگران میخوان در حق او روا دارن پیدا کنند ولی نه در معیار شهر میگه از طریق صحیب اینجا باید برسیم لذا مرحله دوم چیه میگه اف گذشت اقماز پیغمبر رو ببینید پیشانی شکسته دندانشو شکستن همزه سید شهید شده با همه اون غذایایی که در جنگ اهد میدونی یه وقتی در حضرت گوشه ایستاده دست به آسمان بلند کرده لبها میجنبه میجن به کردن داره نفرین میکنه نزدیک شدن داره به خدا عرض میکنه اللهم مغفر لقومی و احنا لا یعلمون رسبر کما صبر اولول من منر رسول گونه که اون بر جستگان شما به اندازهی که توان داری این هم یک نوع صبره با توجه به این حرفی که عرض می کنم اگر احساس شد این اف باعث سوء استفاده است نه اما عدم اف باعث کینتوزیه باعث در خود انسان حالت اغده رو بالا بردن و نه این هم نیست حق رو در نظر گرفتن بر اساس حق اقدام و عمل اقدام مرحله سوم در اموری که نه تحققش در اختیار ماست نه مکافاتش در اختیار ما مثل بلاها و حوادثی که پیش میاد و نسبت به معاخذه و مع... مکافات مثلا نمیدونیم کی کرده که تا بتونیم مکافاتش کنیم اینجا هم صبر خیلی مهمه چرا چون دنیا داره ابتلاس دنیا داره مشکلاته به فرموده م... مولا دارون محفوف محفوفه است که گرفتاری ها و ابتلاعا به صور مختلف این دنیا را راهاته کرده حالا که جوریه یک زمان بیتابی حتی در قرائن بحث های ربائی میشه این مطلب رو پیدا کرد بیتابی باعث میشود که به او اون ارزش که بناس در اثر صبر بدن ندن زودتر مشکلش رو حل کنن این شده ولی در قبالش اون ارزش که مثلا جناب شاگرد امام صادق علیه السلام ابو که چشماش نابیناست خدمت امام صادق علیه السلام از اصحاب یکی از ابتلاعات دیگه خدای ابتلاعی براش مقرر کرده خب سبر در اینجا نسبت به چی میشه؟ نه این نابینا شدن به اختیار خودشه نمیتونه کسی رو مکافات کنه که صبر کنه صبر در اینجا به معنی اینه که تسلیم نسبت به شرایط موجود بودن و شکل نداشتن به امام س... کسی شماستتش کرد تو که این همه پیش امام صادق میری پیش امام صادق عزیزی این همه از امام دفاع میکنی روایات امامو رو برای دیگران بیان میکنی خب ببین امام شفای چشمتو رو نمیده مگه نمیتونه چشمتو رو خوب کنه دلش شکست اومد خدمت امام صادق علیه السلام آقا هم میکنن اینجوری دلمو به درد آوردن میگن انقدر محبوب امام شایده خوب امام صادقه الان در سلسله روات ما وقتی حدیثی رو از ابا بسیر نقل میکنن بهش توجه میکنن که ابا بسیر آدم ساده ای نیست. خب یه همچه شخصیتی اومد به امام صادق، آقا دلم به درد اومده. حضرت فرمودن ابا بسیر، میخوای الان کاری بکنم چشمت خوب بشه، بینا بشی؟ اما این اما رو دقت کنید. یک ارزش حالا اون ابا بسیر میدونه و امام من نمیفهمم چیه. چی بوده که بهش فرموده برای امام نقل نشده؟ اما اون فضیلت اون ارزش اون چه که بناس به تو بدن در اثر این نابینایی است اگه بینایی بگیری اونا رو از تو میگیرن گفت نه یاابن الله اونا را حاضر نیستم از دست بدن من حاضرم همین نابینایی رو تحمل کنم ولی اونا رو برای من اجازه بدید باقی باشه ای صبره نوع ایستادگی در مقابل برخی از مشکلات و معضلات در برابر البته ممکنه کسی به ذهنش برسه مگه خدا نعوذ بالله بخیله که بدون تحمل این مشکلات مشکلاتون مقامات رو بده ببینید من گیرم مجبورم این مثال رو بزنم پدری که توان داره ده میلیون تومان پول الان در اختیار بچهش بگذاره ولی بچه چهار پنج ساله هست نمیگذاره اصلا اینجا صحبت بخل و بخششه یا صحبت صلاح بودن و نبود این صلاحیت نداره این مقدار پول به دستش بدن خانمان سوز میشه گرفتاری ها درست میکنه ممکنه سبب قتلش بشه کسانی که به یک ظرفیت هایی نرسیدن اون امور را به اونا نمیدن چون اگر بدن خانمان سوز میشه میگه دوست داریم میخوایم بد بدیم ولی سب کن بفضینت پختت کنیم به اون شرایط لازم که رسیدی بیا حالا بهت بد بدم برای این پخته شدن همون گونه که غذای خام رو باید رو حرارت بگذارد رو این آتش گرما بگیره تا پخته بشه انسان خام برای پخته شدن باید در کوره عبادث قرار بگیره اون وقت عدم صبر باعث می شود بین را میگن این دیگه بیشتر توان نداره همینقدرش بدید بده بره. امام حسین علیه السلام صبح آشورا داره با اون دسته میگه تا اینجا اومدید سهلی مقامتون بالاست بنل کرامید میخواید به اون درجات بالاتر برسید صبر. این مرحله استقامت رو باید داشته باشید تا اینجا برسید حالا ببینید انبیا در اثر صبر به کجا میرسیدند؟ حدیثی مفصل اول تصمیم داشتم بیارم براتون بخونم بعد دیدم نه این شبا ما بحثای دیگه ایم داریم اشاره میکنم دیگه حدیثش بمونه که فعال میکنن از امام علیه السلام. خداوند چرا اینقدر انبیا رو مبتلا کرد تا حدی که این روایت معروف البلاو ل للبلا اصلا این بلاها این ابتلاعات این گرفتاری ها ماله بندگانیشه که دوسش میداره خدا براشون پیش میاره صحبت راجبه ایوب علیه السلام راجبه صبر عیوب در جلد 94 بهاره اگر اشتباه نکنم یه بحث سیار زیبای سصفه آیا خداوند با ایوب بد بود؟ آیا خداوند میخواست ایوب عذیت کنه؟ آیا خداوند اینا رو یکی یکی میفرماد میفرماد بعد میگه در مسیر کمال ایوب نیل به اون درجه ممکن نبود مگر اینکه بخواد این امور رو تحمل کنه تو پرانتز بگم امامان همه پاکن همه معصومن همه سطحشون بالاست اما اینکه که انال حسین مصباح الهدا و سفینت و اومدن خدمت امام باقر عليه السلام و امام صادق آیا فقط ایشونن فرمود نه همه ما سفینه نجاتیم همه ما مصباح ادایتیم لیکن حسین اسرعه چرا فرمود به خاطر شرائطی که در زمان امام حسین علیه السلام برای امام حسین پیش آمد که او باید تحمل بیشتری نسبت به این مسائب داشته باشه چند چیز را خدا به امام حسین داد به بقیه نداد یکی شفا در تربتش یکی استجابت دعا در زیر گمبتش هر کزاینایی که مطرح شده یعنی وقتی بناسی چیزایی بدن در قبال اون چیزها به این مثالی که افشتردن دقت کنید الان میخواد ده میلیون تومان پول بده مثال خیلی ساده است ا پیش با افتاد است چارهای ندارم برای محسوس شدن میگم ده میلیون تومان پول رو میخواد بده عاقله میخواد بده یا دهنده این پول عاقل نیست اگر عاقل نباشه که حساب کتاب نداره حالا به چه حساب میدی به چه حساب نمیدی نه اینو ما بحث نمی کنیم عاقل حکیم عادل رو حساب میخواد بده آیا طرف ظرفیت داره یا نه این دعملیونو بشت بدم میره خودشو میکشه اینو بهش بدم به کجا لذا مثلا همون قضیه معروفی که رفت پیش استاد قوی آقا علم مثلا اسم اعظم رو به من یاد بده گوه عزیز من نمیتونی دیدید بعضیایی که تو وادی های کمالات معنوی قرار میگیرن گاهی اونقدر میگردن اونقدر ناله میزنن بالا پایین این در اون در تا بتونن رحیافتهی پیدا کنن که ره رو به اونها بنمایه بعد وقتی به اون رهیافته ها میرسن اون رهیافته ها محکانی زنن اینا رو تا ببینن میشه اینا رو به یه ای ببرن یا نه حالا رفته پیشی بزرگی نالب و بالا و پایین آبادست ما رو بگیر از اون مسائل اسرار مگو هم به ما بگو عزیز من ذرفیت نداری برو هنوز خیلی پخته پختشی اسرار اسرار اسرار فرمود خیلی خوب یه جعبه داد این جعبه رو ببر تا فردا همین موقع بیستو چهار ساعت درشم یا جعبه رو نگه میداری بعد از بیستو ساعت میای پیش من جعبه رو برداشت با خوشحالی رف این مقدار صبر این مقدار ایستادگی این مقدار استقامت حفس نفس در و نیس تو جعبه صداهایی میاد وسوسه وسوسه میخواد بخوابه نمیتونه بلنشم ببینم چیه جعبه رو واکن دید موش ازش پرید رفت با یک ناراحتی صبح شد اومد سراغ این عالم ربانی آقا من مسخره کردی. موش گذاشتی تو جعبه دادی به من که اینجوری من... گفت عزیز من تو تحمل یه موش تو جعبه نگه نداری اسرار الهی رو میخوای تو دلت نگه داری لذا گایی وقتا که خیلی تو این وادی داد میزنن یه چیزکی بهش نشون میدن ببینن به چند نفر میگه با چندتا در درمیان میگذاره چقدر دعا میکنه چگونه با مردم برخورد میکنه بعدش بش میگم برسته برو کنار یه ذره به توان دادیم رفتی سراغ ای کارا صبر فقط در برابر اینو توجه داشته باشید لای بالاتر بالاتر بالاتر اگر میخواد به اون درجه ای برسه زینب که سلام الله علیه من چی بگم سه زبان آدم بند میاد داره از کوفه به شام به عنوان اسیر برده میشه. توان جسمی به حدیه که نماز شب و نشسته میخونه. قدرتی اینکه ایستاده نماز شب بخونه نداره. جسم اینجا رسیده. سژه خادمه که این مراحل خوب طی کرده، اومده خدمت حضرت زینب سلام الله علیها بیبی اجازه میدی من دعا کنم ماعده آسمانی بیاد چون این قدرت رو من دارم. آیا میشه فوری از فرمودن ساکه؟ ما اگه بخواییم که الان همه اینجاها پر میشه ما مأموره به صبریم ما باید جوری دیگه عمل کنیم نه اینکه ما این قدرت چقدر صبر میخواد دقت بفرمایید چقدر صبر میخواد که این همه قدرت خدا به او داده میتونه زمین و زمان رو زیر و رو کنه ولی با چشماش ببینه شم رو سینه امام حسین نشسته خم به ابرو نیاره مگه شوخیه. اون وقت ما اگر بگیم و زع نه سما از دنیا به زینت نل کواکب و هپزنا من کل شیطان رجیم که بحثش رو قبلا کردم این زینت عالم وجودی یعنی زینت این مبارغ است. چرا چون یکی از بزرگترین عوامل برای مقام صبره چه صبری از این بالاتر سر حفظ نفس دیگه حفظ نفس در چه میتونه یه اشاره کنه الان تمام سپاه عمر سعد و کن یکون کنه تسلیم محض تا این هست که دستاشو بذاره رو سر مبارک بگه اما فیکم مسلم اعمال قدرت اون چنانینه به عنوان اسیر سوار بر مرکب بشه و همه رو تحمل کنه حالا رجیب انبیا ببینید خدا می‌خواد اینا رو به جایی برسونه مسئله صبر رو چگونه مطرح میکنه که ما اول اصل بحث برامون جا بیفته تا بعد ببینیم میخواییم روش کنیم اگه بناس روش کنیم در مسیر ایجاد صبر برای خودمون چه کارهایی باید انجام بدیم که صبور باشیم تمرین صبر چگونه باید کرد اون کاربردی و عملیش رو هم ان اگر عمری بود و زنده بودم عرض خواهم کرد خدمتتون دقت بفرمایید در سوره اعراف آیه س... هفتاد و دو چندین آیه در سوره اعراف هست که حالا من سری به عنوان نمونه بعضی‌هاشو عرض میکنم. یک آیه هفتاد و دو و لذینم معهو به رحمت مننا تقاضا دارم دقت کنید این ذرافت های قرآنی رو راجع به چی؟ این فانجیناه فا فا راجع به انبیایی که یکی یکی اینجا رو جب نوحه نوهه چند تا پیغمبر اسم میبره این تعبیر رو اول دقت بفرمایید همه اینها رو میفرماط پانجیناهو به با بابای سببیت در اینجا به سبب به وسیله با استعانت رحمت الهی اینا رو نجات داد یک حضرت نوه بعد میخوام این رحمتو کنم که این رحمت در اثر چیه میگه رحمت در اثر صبره اگه صبر نمیکردن این رحمت براشون نبود حالا دقت بکنید از خود قرآن میگم از خودم نمیگم اینجا آیات قبلیش رو شما بخونید سوره اعراف به آیه 72 که میرسید این مطلب روشن میشه سئن و حضرت نوح پیغمبر را نجات داد با اونایی که باش بودند کیا باش بودند همونایی که سوار کشتی شدند رحمت مننا به وسیله رحمت با اون رحمتی که مننا از مای خدا برای او بود این آیه هفتاد دو قبلش آیه 58 و هشت راجع جناب هوده میفرماید نه ببخشید آیه هفتاد و سوره هود معذرت میخوام. سوره هود رو هم آیه 58 و هشت. ولما جاء امرنا نجینا هودن ولزین آمنو معهو به رحمت مننا این همین مضمون هست یا نه؟ آیه 73 سوره اعراف گفت چی؟ راجبه حضرت نو نجاب دادیم به رحمت مننا و معهو اونایی که با او بودن از تفیل این رحمتی که برای او شد اونا هم نجاب دادیم در سوره هود آیه پنجا و خود حضرت هود علیه السلامه فلم ما جا امرنا وقتی بنا شد که اون انایت و امر ما بیاد نجی یعنی اون ببخشید بلایی که بنا بود ما برای اون قوم بفرسیم نجینا هودن نجات دادیم و اونایی هم که باهود بودن نجات دادیم به رحمت مننا و نجینا هم من عذاب غلیز از اون عذاب درنا که با شدتی که مطرح بود او رو نجات دادیم آیه 65 در همین سوره حود راجع به حضرت صالح عليه السلامه فا اغرو آیه 65 بله ها 66 معذرت میخوام باز فلم ما جا امرونا وقتی بنا شد که ناغه صالح رو تعقید کردن بلا نازل بشه فلم ما جا امرونا امر عذاب ما نازل شد نجینا صالحا ولذین معهو به رحمت وقتی میخواد بلای ما نازل بشه مردم بلاگیر بشن اینجا صالح رو نجینا صالحن صالح رو نجات دادیم و لذین معه و کسانی که با صالح پیغمبر بودند به رحمت مننا به خاطر اون رحمتی که ما داشتیم همچنین آیه هفتاد و سه سوره هود در اینجا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام مطالبی رو بیان میکنه که ملائک اومدن و بهش بشارت دادن گفتن که ما میخوایم به تو اولادی بدیم بعد از همه اینها باز میرسه به حضرت ابراهیم علیه السلام همین مطلب رو مطرح میکنه که قالوا حضرت ابراهیم گوه آخه به من میخواید بچه بدید در این سن غالو اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته و علیکم رحمت خدا و برکاتش برای شماست که بناست این آثار برای شما به وجود بیاد. آیه چهار سوره هود. اینا همه رو تو این یک سوره خدا بیان میکنه آیه چهار هود راجع به شعیب. ما جا امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمتنا. ببینید چند تا اینا دیگه از این نمونه باز هست. حالا من این چند تا رو بگم تا رحمت طلب بحث کنم. شعیب رو قرار شد بلا بیاد تو قومش خودش و من معهو را در رحمت مننا نجات دادیم صالح را در رحمت مننا نجات دادیم حود را در رحمت مننا نجات دادیم نوح را و غیره را خب این رحمت به کی میرسه؟ حالا اینجا دقیق بشی سوره بقره قوغاست این مطلب خدایشون خیر بده اون بزرگواران و اساتیدی که اینجوری به ما یاد دادن و خدا انایت و اپازه آنانی که مدد می رسانن به حقیقت عبی عبدالله می که این مددشون رو به همه ما ادامه بدن ببینید حالا قرآن من از خودم نمیگم بعد بریم حالا سراغ روایات اگه وقت اجازه بده در قرآن کریم آیه 155 و 155 شش و صد و و هفت. بحثش رو قبلن کردیم تو سری بحثایی بود که تفسیر داشتیم. اما حالا میخوام کار بود. ول نبلوان نکم به من الخوف و ونقص و من الأنواء و والثمرات و السمرات. ببینید ول نبلون نکم. لام لامه تأکیده. نونم نونه تاکید سریل است. حتی من، حتی مسلمه برو بدونه برگشت قطعی قطعی شماها رو امتحان میکنیم به چی؟ یه جاهای نگرانی جو تو گرسنگی و فقر مالی نقص در اموال مشکلات مالی ول انفوس بیماری جسمی و سمرات بزرگی میفرمود نقص سمرات فقط کمبود میبه ها نیست یعنی هر چه که شما تو جامعه براتون سمر حساب میشه گاهی آوروتون نقص سمرات ی بزرگی که عرض میکنم حساب شده میپرمود و درستم مثلا بم روشن و واضحه نقص سمرات ممکنه در آوروی شما نسبت به جامعه موقعیت شما نسبت در جامعه و, و اینا رو گاهی نقصی درش ایجاد میکنه و بشر صبرین. اما اونایی که صبر میکنن سبرو معنی کردم اونایی که صبر میکنن بشارت باد بر اینها الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَهُ قَالُواِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجئون که بحثش رو قبلن کردم اینجا اولائی که عليهم سلواتون ممغب بهم و رحمتون پس نجینا صالحا شعیبا نوح و غیره و من نهو به من مننا چرا رحمت به اونها رسید ده میلیون رو چرا به اونها دادن؟ چون اونا به حدی رسیدن که با یک ده میلیونه میتونن کارایی بکنن چرا نوح را به اون مقام ابراهیم را به اون مقام شعیب و صالح را به اون مقام و دیگران و دیگران را رحمت بهشون رسید چرا رحمت بهشون رسید چون صبر کردن آیه میگه و بشره الصابرین اولاک علیهم سلواتون من ربهم رب یه سوژه میدم من نوشتم آیات شو اگه بشه بحث کنم اگه نرسیدم سوره خودتون بگیرید برید دنبالش اینم حساب شده است عرض میکنم از بزرگان آموختم میگم نفرموده الائکه علیهم صلوات و نمرب بهم و رحمت الفلام نداره و رحمتون نکره داره برید تو قرآن هر جایی که رحمت با الفلام اومده رحمت‌های های مشخص محدوده رحمت به صورت نکره آمده رحمت گسترده الهیه آیات نمونه هاشو پیدا کنید این امسانه که صبر می اون ارزنده چرین رحمت پروردگار شامل حالشون میشه. ولی بی سادگی نیست، سا می صبر میخواد. لذا در روایت داره به هر نسبتی که انسان در یک مصیبت جزع میکنه به همون نسبت از صبرش کاسته میشه به اون نسبت که از مقام صبرش کاسته شد به همون نسبت از رحمت کاسته میشه به همون نسبت که از رحمت کاسته شد از تعالی مرحلش میاد پایینتر لذا شما یک مورد به من نشون بدید خود ابی عبدالله یارانش حضرت زینب کبرا الله علیها در واقعه کربلا تا برگردن مدینه جزع و فضع کرده باشن نسبت به خودشون جزا و کردن نسبت به انحراف جامعه اون دلسوزیه جزا وای این مردم چه میکنن؟ وای با خاندان رسالت چه کردن اما یک جا شکایت کرده باشن در اون اوجش وقتی زینب کبرا سلام الله علیه میاد کنار گودال قتلگاه چی میگه؟ یک داره که دست میبره زیر بدن متحر آقا بی عبدالله شمشیرها رو کنار میزنه خنجر شکستها رو کنار میزنه سنگار رو کنار میزنه بدن بیشه رو نگاه میکنه دستشو میبره زیر بدن مبارکه کمی میاره بالا بعد یک به آسمان نگاه میکنه خدا یا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن الله اکبت آخه شما رو به خدا ببینید ما استخار میکنیم شیعه میبالیم به خودمون ولی فرض کنید شیعه نیستیم شما رو به خدا کجای عالم دارید نشون بدید سبر رو ببینید میاد زیر بدن بدن میاره بالا خدایا این قربانی را از ما قبول کن بعد سلسله مراتب رو رعایت میکنه رو میکنه به پیغمبر نمیگه که من بیتابی میکنم شکایت میکنم میگه عل که ملیک ک سمایا رسول الله خاضا حسینان مرمل به دما مقد اعضا و بنا تو که سبای ها چی میگه؟ یا رسول الله ببین امت کار به کجارساندنده. و همین حسین توست که این شعر حساب شده این کشته پ به هامون حسین توست این اشاره به همین بیان بیان چیه؟ مادر را و لذا وقتی وارد مجلس ابن زیادم میشه ابن زیاد میخواد سماواتت کنه در اون شرایط خاص شرایطو در نظر بگیرید کوفه است کوفه نزدیک چهار سال امیرالمؤمنین خلیفه بوده چهار سال خوردهای در اونجا خطبه نماز جمعه خونده منبر رفته زینب سلام الله علیها یک به عنوان دختر خلیفه مسلمین تو کوف زندگی کرده دو به عنوان دختر امام زمانشون در کوف زندگی کرده سه معلم خانمها در کوف بوده بهشون درس داده حالا به این کیفیت کشیدن آوردن توی بازارشان صدقه میدن سنگ میزنن تحقیر میکنن توهین میکنن با این کیفیت وارد کاخ ابن زیاد کردن ابن زیاد هم میخواد شماتت بده صحنه رو مجسم کنیم در ذهن لذا میگه ما سن الله و یا زینب خدا با شما چه کرد همون دشمنانی که تو کاخ بودن تو تاریخ نوشتن میگن صدای علی تو کاخ ابن زیاد بیچید همه ی رفع شد همون تون صدا همون وقار، همون عظمت حیدری که در خطبه های نماز جمعه علی شنیده میشد سلام الله علی دیدیم با صدای رسا و الله ما رأیت الا جمیلا یبنمر مرجانه الله اکبر نبالیم به خودمون جوان برو افتخار کن که ما این مکتبو داریم زینب داریم سلام الله علیها ما علی اکبر داریم ما قاسم ابن الحسن داریم اون بچه هاشم تو این خانواده لذا اگه رسیدم حالا خطبهشو شو براتون میخونم وقتی حضرت زینب سلام للیه ها تو بازار کوفه شروع کرد خطبه خوندن کلسوم خون جناب سکینم خون یه گوشه ای چنان ولوله در جمعیت افتاد میگه که به مرضی ما ماتم شده بود گفت فدای شما خانواده بشم زناتون بهترین زنان مرداتون بهترین مردان پیراثون بهترین پیرا بچه‌هاتون هم بهترین بابا حسابی داره که توی خانواده حساب شده بهشون دادن در قوان چی صبره حالا یه نتیجه همینجا بگیرم خیلی دور نشم که سه چهار جلسه آخری بخوام نتیجه بگیریم همینجا یه نتیجه بگیرم صبر را قران میگوید اولائک علی یعنی کسی که صابره نتیجه صبر اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. رحمت رحمت میفرسته خدا خب یک از همین کلهای پایین شروع کنیم برادر تا چشمت به نامحرم نامحرم میفته صبر اینجا چیه از همین جا شروع کنیم خدایا یا به خاطر تو صبر میکنم نگاه نمیکنم نمیخوای خدا صلوات به تو بفرسته درود به تو بفرسه. خود خدا میفرستا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی اینجا نمیگه اولائک علیهم صلوات من ملائکة ربهم که علیه صلوات من ربهم خدا میگه درود بر تو بنده من صبر کردی نمیارزه عزیزم من ربا میارن الان بد بدن لذت داره این پوله میگی صبر میکنم درسی که میخوایم بیاموزیم به زنگاهای گوناگون نفس نفس دیگه خدایا چون تو نمیپسندی من جلوشو میگیرم چرا صبر میکنی اون برای قضیه الان پول داری امکانات داری یه بنده خدایی دوچار مشکلاتی شده واقعا هم میتونی گرفتاریشو حل کنی صبر در اینجا چی از پولت بگذری از مقامت بگذری و ها کذا دیگه نمونه رو خودتون میتونید پیدا کنید و نمونه های دیگری که در مراحل مختلف زندگی برای یک انسان میخواد پیش بیاد به مرحله عملی از اینجاها شروع کنیم اون وقت خدا رو که دوست داره توی این بزنگاه ها قرار میده تا برسونه به اون مرحله که این عبارتو من پریروز صبحم گفتم روز اول محرم تو جلسه صبح ها الانم میگم عقیده دارم روش حساسم چیزها در مورد این آیه و این مرحله از نظر تکامل معنوی گفتند و بحث کردند صبر به اونجا برسه ولا تأخذو سلاه لومت و لا ای صبر خیلیه آقا اینو میگم بیخیال باشه اونو میگم بیخیال باشه این و ثاق بارزش هم دیگه گفتن کافره از اون صبر در مقابل این مشکلات یعنی انسان بتونه از این پله ها شروع کنه هی استقامت هی استقامت هی استقامت, استقامت به اونجا برسه که در مقابل این صبر طبق بیان خود قرآن کریم سلامات الهی شامل حالش بشه. رحمت الهی شامل حالش بشه رحمت الهی که براتون خوندم و نجینا کیو کیو کیو کی به رحمت نه تنها نجینا هو نه هو و من مع به رحمتنا از برکت او دیگرانم که این صبر این کرد ولی خب اینا تو این بزنگاهای گوناگون امتحان به شکل‌های مختلف مثلا صبر در مقابل مقام و منیگ است در حالات مرحوم و شیخ حسن علی نخودکی نوشته شده خودش میگه مرحوم تخت اون استاد قضایی که خدمتشون رسیدیم در تخت فولاد اسفحان. یکی از چهره های معروف علمی شهر که در سطح بالاییم بود فهمید که این آقای تخت فولادی و اون پیرمرد قضایی در اونجا مقاماتی دارن از اینا میشه خیلی چیزا استفاده کرد لذا یه با شکی اومد خدمت آقا آقا ما هم راه بدید کو باشه شما هم راه میدن ولی یه شرط داره فردا که از شهر خارج میشی میای تخت فولاد تخت فولاد حالا دیگه وسط هم واقع شده و این کیفیت‌ها داره بیرون شهر بوده کنار رودخونه آقا فردا که میخوای بیای یه خروس باید با خودت بیاری حالا مثلا آیت الله شهر باش آقا فردای یه خروشی فردای فردا یه خروشی زیر اوا مخفی کرده. و این هیچ هیچ خیابون مردم نبینن خب بده آقای خروش ورداشته ببین کیفیت یا وشکی به این صورت آورد استاد بفرمایید این خود نه آقا جون باد خروش اینجوری تو دسته بگیری بیای آخه من تو جا... همین میخوام صبرشو داری منو بکوبی یا نداری اگه نداری دیگه سراغ من نیا کابل شرط شناوری برهنه گیست این جزء با صبر نمیشود صبر معنی عامش. اما به این درجه از صبر رسیدنم از این پایهای کوچولو باز شروع بشه لذا خدا اینو داشته بشی تو دعا خدا اگه میخوای ما رو رشد بدی میندازی تو ابتلاعات گوناگون صبرشان به ما بده توان ایستادگیشان به ما بده قدرت جزا و فزع به ما بده تا در جوابش اونی که تو صلاح میدونی لزاباجو البته تحلیل میکنن که این تحلیل شاید از روایات هم به دست نیاد که همه انبیا یا مرحله کوتاهی چوپانی داشتن چرا که کیفیت را بودن را حتی از اون مرحله شروع کنن همینطوری که شما میخواید یه نفر رو مثلا مراحلی رو سِی کنه تا بیاد این صبر رو از کجا شروع می کنن در واجبات نماز تو بخونی یا استقامت نداری داری خمسه تو بدی یا نداری سبرو معنی کردم سبرداری روزتو بگیری یا نداری صبرداری سله رحم و وظیفه شرعی تو انجام بدی یا نداری از اون طرف صبرداری از نگاه به نامحرم چشم بپوشی، سعیداری از آلودگی های جنسی بگذری. سعیداری چی اومدی بالاتر؟ او وقت پله بالاتر شروع میشه. صبر نسبت بعضی ها همون مرحله فعلا تو صبر همین مونده این نوبت به اون ابتلا نمیرسه. اگه میخوای بیای بالاتر به یه مرحله رسیده میگه الان سال پنجکان که 10 میلیون تو من نمیتونم بهش بدم. رسید به یه مرحله که توان 10 میلیون داره ولی میخوام صد میلیون در اختیارش بگذارم باید توانش رو ببینم لذا خدا ابراهیم خلیل و رحمان را که مقام نبوت الول عظمی بهش داده چیکار میکنه؟ و به تلا ابتلافش میاره ببینم میتونه مستاق نیجا کل ناس اماما قرار بگیره این آیه رو اشاره کنم بحث بمون انشالله پرداشت چی شد که امامان که بر جختگان به مقام امامت رسیدن و جعلناهم اعمتن یهدون به امرنا به ما رو به ما اون مرحله قرآن چندین آیه در این زمینه داریم که حالا رو میکنم بالاترین مقامی که خداوند در این آدم میده مقام امامته از نبوبت بالاتر اشتبه نکنید بحث کردیم قبلنا نه یعنی امامان از پیغمبر اسلام بالاترن بحثش کردیم کسی میخواد نواراشو بشنوه اون مقام که حتی ابراهیم میخواد به مقام امامت برسه بعد از نبوبت امتحان میشه خود پیغمبر اسلام میخواد به مقام امامت برسه ائمه ما به مقام امامت برسن اینا باید تو مرحله صبر قرار بگیرن و جه اللهم یهدون به امرنا به ما و کانو به آیاتنا یوغنون اینجا اول صبر رو میگه بد ایغان رو میگه و اون قاعده کلیه و الاسر الانسان الافی الا الذین آمنو و عمل و صالحات و تواصل به و تواصل به سبر. مظهر این صبر کذایی کربلایی ها هستن سبرن بنه الکرام وقت چجور صبری جلو ابی عبدالله ایستاده کی رو همین همینجور داره میاد اشاره کردم ولی میخوام ادامش رو بگم خم به ابرو میاره مگه شوخیه خم به عبرونه میاره حالا افتاد حبیب ابن مظاهر میاد بالا سرش دیگه به روایات نرسیدم باز بمونه حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش سرش گرفت تو دامن خوشا حاله تو به فیض شهادت رسیدی حالا داری میری منم دارم میام اگر بودم میگفتم که وصیت کن ولی منم که دارم میام دیگه نمیگم وصیت کن گفت رو با کرد یه مختصر رمقی داشت جون میداد یه نگاهی اینجوری کرد گفت وصیت دارم چی با انگوشش اشاره کرد به امام حسین اوسی به هازل غریب آه این چه استقامتیه داره جون میده شما امار یاسر میشنوید دیگه امار یاسر مو بر بدن آدم سیخ میشه که اینا چی بودن چه کردن به کجارت؟ استقامت شو ببینید یاسر اول شهید مرد در اسلام ثمیه اول شهید زن در اسلام پدر مادر این اماره. از اول اول شکنجه رنج کتک فوش زندان طبیعی زخم دیدن دیدن دیدن تا جنگ سفین شوخیه 23 سال زمان پیغمبر 30 سال زمان تا به حضرت عمید علیه السلام بریسه حالا جنگ سفین اون اولاش بگیریم 27 سال 23 سال 27 سال نزدیک پنجه سال پنجاه سال تحمل کرده وقت عمارث شوخیه که امیرالمؤمنین بگه عمار چه عماری خب این پنجاه سال تحمل کرده حالا امیر پیغمبر بهش فرموده بود عمار خدایا تو رو به مقام عمار تو رو به مقام کمی تو رو به مقام مالک اشتر تو رو به مقام عویس قرنی رو به مقام قمبر امیرالمؤمنین این معرفت این اصدادگی این دلواختگی این سود و عشق و گدازه نسبت به حریم این ارزشمندان به ما انایت بفرما اماری که می گدازه با تمام وجودش در این راستا یک عمر کار کرده یک عمر پنجه سال سوخته سوخته سوخته. حالا اومده یه روزی با پیغمبر بود پیغمبر فرمود عمار چه میشود تو را که همه علی رو رها کنم اینا ارزش داره اینا رو بخویم جوان اونجور متدیم باش صبر رو به اینجا برسون اگه بتونم بگم حالا دیگه توانم چقدر نمیدونم اگه بتونم بگم به این صبر برسی یک نفر تو تهران نماز نخون تو نماز رو بخونی در تو تاثیر نکنه یک نفر تو تهران حسین حسین نگفت خدا نیاره اون روز تو بگی یک نفر در این عالم اعتقادات هجابی رو نداشت توجه به مسائل هجاب نداشت تو خانم تکون نخوری این صبر رو میتونی داشته باشی؟ به اینجا پیغمبر فرمود امار چه میشود تو را اون روزی که همه از علی جدا بشن؟ گفت یا رسول الله من انشاالله اون روزم از علی جدا نمیشم پیغمبر فرمود درست راست میگه تو از علی جدا نمیشی تا آخر عمرم با علی هستی آخر عمرتم از علی حمایت میکنی از دنیا میری آخرین غذاتم یه کاسه شیره اینو پیغمبر بهش گفته بود همه نوشتن اهل سنت هم نوشتن جنگ سفین شد یکی یکی یاران امیر المومنین می جنگن نیرن جنگ امارم رفت بیدون پیره 50 سال حالا از به اسلام تا حالا خونه دل خورده رفت و جنگ شایانی کرد و خسته شد تشنه شد برگشت اومد تو خیام و امیرالمومنین المومنین گفت یه چیزی حضرت جام شیر داد دستش تا جام شیر دید لرزید اشکام جاری شد نش که ناراحتی نه لرزش لحظه وصل رسیده اون وعده نهایی چون همه درد شبوران اینه که در اون لحظه با حالت صبر از دنیا میریم یا میلغزیم امیر لبخندی زد اممار چیته به خدا لحظه وصلم نزدیک شد مولا رسول الله به من فرموده بود بسی این که دیگه حالا اون لحظات آخره رفت خبر آوردن برای امیرالمومنین المؤمنین امار شهید شد یکی از اصحاب منظورم این نکترس نه عقل میکنه میگه دیدین که امار افتاده رو زمین خون از بدنش میده ولی سینخیز داره حرکت میکنه خودمونو رساندیم به امار امار چیه نه دیگه نداره داره جون میده چه میکنی؟ گفت تا جان داشتم از علی حمایت کرد دیگه توان نداره اونی که اونجا افتاده داره جون میده دشمن علیه میخوام این لحظات آخر خودم رو بکش من بیافتم رو سینه دشمن علی جان بده. ببینید صبر رو ببینید میتونست را پنجه سال خونه دل خورده خب الان اونجا خیلی با آرامش جان بده راحت شدیم میگه همین چند لحظم میخوام حرکت کنم اونی که از من برمیاد انجام بدم لذا اصحاب ابی عبدالله در کربلا صبرن بن الکرام فمال موت الاغن سره از عزیزانم اون صبر مرحله بالاترشون چجور شدهن بذار از اصحابشون هم بگیم حق دارن جوان سیزده ساله است وهب مادرش هم ام وهب تو خیام ابي پسر یه وقت مادر اومد پسر ایستادی عشق مادر به فرزند ایستادی دارن به پسر پیغمبر جسارت میکنن و به او ظلم روا میدارن مادرجون منم منتظر بودم ببینم شما اجازه میدی یا نه گفت برو برای حمایت و دفاع پسر پیغمبر اومد و ذرهش رو پوشید و لباسش رو پوشید و سیزه چهاره سالش بیشتر نیست اومد پیش امام حسین یا ابن رسول الله به من اجازه بدید میخوام برم میدون گفت آخه مادره گفت مادرم منو فرستاده مادرم من فرستاده استاده فرمود برو این که برو یعنی اینا لیاقت کسب اون مقام دارن امام حسین نباید اونا رو از اون مقام باز بداره حساب اینه وگرنه این جوان بره شهید بشه نشه برای امام حسین روز آشورا از نظر پیروزی آدم و پیروزی ظاهری فرقی نداره ولی مانع فیض به اونا نمیخواد بشه برو جوان جوان رفت مادر در خیمه ایستاده جنگ بچه شد همان یه وقت جنگید و حمله شایانی به اندازه توانش کرد و دشمن غلبه کرد و سر پسر و برید برای اینکه دل مادر رو به سوزونه رو به خیام عبی عبدالله سر و پرند به طرف خیام مادر جلوی نشسته بود سر اومد که دامنش سر ورداش نگاهی کرد پرند به طرف دشمن گفت سری را که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. عمود خیمن رو کشید ستون خیمه رو کشید دوان دوان اومد می تو میدون شروع کرد جنگیدن رجز معروف و مشکورش هم انا اجوز و سیدی زعیفه حامیتون ها حافیتون نحیف. الاخر که با اون امام حسین دوید اومد میدان گفت جهاد برای شما نیست برگردید خب همشون خب حالا جای تعجب داره اینا که جز اصحاب حضرت بودن این صبر اما صبر زینب رو داریم بحث میکنیم هر شب یه تکی بگیم وقتی که کاروان ابی عبدالله از مکه داشت حرکت میکرد، امشب این تکه رو بگم وقتی کاروان ابی عبدالله از مکه داشت حرکت می‌کرد دورش رو گرفتن، بداد کردن، یکی گفت نرو یکی گفت چی این قضايا؟ تا عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب اومد، خب دستش کسالتی داشت نمیتونست در واقعی کربلا دخالت کنه و شرکت کنه، با امام حسین بداد کرد حضرت زینب همراشون کاروان از مکه مقداری اومد بیرون یه وقت گفتن یا ابا عبدالله از پشت سر یک صدایی و شبهی میاد امام حسین برگشت از دور برمود صبر کنی صبر کردن یه وقت دیدن عبدالله جعفر دست دو دوتا پسراشو گرفته داره میاد حسین جان من که نمیتونم کربلا با تو باشم ولی این دو تا بچه های منم فدای تو زینب کبرا خودش نمیخواد بگه من بچه هامو میبرم اگه عبدالله خودش خاص به این فیز برسه اومد بچه ها تو کاروان ابی عبدالله بودن تا روز آشورا هر شهیدی روز آشورا شهید میشد. امام حسین میرفت به سراغش یه خیمه ای رو تو کربلا برپا کرده بودن بدن متحر اون شهید میآورد توی اون خیمه میزاش، زاش رو بد اومدن توی این خیمه جدا کردن مگر بعضی لذا وقتی امام حسین میرفت که بدن اون شهید رو بیاره، پیشاپیش همه زینب سلام الله علیها میدوید و کمکش میکرد و همکاری میکرد دلداری به امام حسین میداد وقتی دو تا بچه های زینب کبرا شهید شدند خود زینب از خیمه بیرون نیومد بعدها عبدالله جعفر در مدینه از حضرت زینب این سؤال رو پرسیده راسته که وقتی دو تا بچه های من شهید شدن تو از خیمه بیرون نیومدی به استقبال امام حسین نیومدی به استقبال بدن بچه های من نیومدی زینب سلام الله علیه ها پرموده باشن بلی عبدالله اونقدر روز آشورا حسین رنج داشت اونقدر فشار بر عوی عبدالله وارد شد که من دیگه نمیخواستم در اون لحظه چشمان عوی عبدالله تو چشم من میفته ببینه دو تا بچه های هم در حمایت او شهید شده نکنه مختصر مثلا رنجی ببره ولی یک مکاشفه ای رو بزرگی در رابطه با عربعی نقل کرده اونم اینجا بگم بزرگی نقل کرده نمیدونم میگه خیلی دلم میخواست در عالم مکاشفه یا رویای صادقه ببینم وقتی که کاروان ابی عبدالله در عربعین وارد کربلا شدن برخورد عالم روحی ابی عبدالله و بقیه با اینها چگونه بود؟ میگه در عالم رویا دیدم یه وقت امام حسین فرمود عباس هم علی اکبرم، قاسمم بریم به استقبال کاروانی که دارن میان حالا عالم مکاشفه و رویا رفتن به استقبال یکی یکی اینا رو ای که از اصفها مرکبها به ز... جلو فایی می اومدن حسین اول پس اینا رو در عالم رؤیا نوازش می کرد یه وقت مرکب زینب که نزدیک شد امام حسین برگشت میگه در همون عالم رویا گفتم که یبنی رسول الله چه شد گفت زینب خجالت می <تصفيق>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 وallah علي ابن الله حسين اولاد الله حسين وallah اصحاب الله حسين الله هم با اسم كلا صاحب الزمان يا الله یا الله يا یا رحمان و یا رحیم یا مغلب الغلوب ثبت غلبی علا دینک وکفنا یا غازی الهاجات و یا کافی المهمات انک مجیب و دعواد انک علا کل شیعن غدیر برحمت که یا ارخم الراحمین یا سیدی الکریم نجني و خلصنی بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا متمم متمم يا مسبب السبب يا مفرج و فرج يا مفتح و فتح يا الله الهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي یا پاتر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا غدیم الهسان به حق الحسن و تسعت المعسومین من ذریت الحسن اللهم اجل ولی کالفراج اللهم اجل ولی کالفراج و من صاره و اقوانه. اللهم انصر من نصر الدين، و من خزل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. إلهي لا تكلني إلى نفسي ترفت اين نابد. اللهم لا تسلط علينا. لم يرحمنا اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بُعْدَ وصدق و وارفان و ارفان الهرمه و اکرمنا خدا به جان خدا به جان امام اثر غسمت میدهیم قلب وجود مقدس امام اص از ما خوشنود و رازی بگردان خدا تو رو به حقیقت امام اص قسمت می دهیم ما را در طول این دهه مشمول انایت اون حضرت قرار بده این جلسه و دوستان خدمت گذار این جلسه ای که در طول سال به امیدها ها اونها رو در این ده مشموله یه گوشه یه چشمی از انایت ما هست قرار بده خدایا مریض ها منظورین مورد نظر سفارش کننده ای کلان فرمودن به حقیقت امیر المؤمنین شفای آجل انایت بفرما خدایا مشکل و مشکلات این جمع و مشکل مورد نظر به حقیقت علیه اکبر برطرف طرف بفرما. خدایا انوات و حقوق من ببخش و بیامورد به نبی و آله